جلسه هفتم از استاد جندری بسم <تصفح> الله الله و در رساله از اینه به و موضوعی قصد طریقی قصد که کاشه از سبوت رو موضوع منابر قاعده که مسلم در موضوعی که احکام تا به که و عدم و علاقه به موضوع که علاقه معلوم و علت شاشه و که علاقه ای خابه نسبت به مخصوه که در تبدیل احکام و موضوعات ثابت و برده طریقی کاشف از سور برا موضوع و در تشریح به مخصوصات برد مثل آیدنیم. که واقع رو نشون مصبت بسن خوبی نیست یعنی بس و این آینه که زید و خوبه وچه زید این خاطر آینه نیست وکه اونها ذاتن ثابت به آینه این ها رو منعکس برده تلیبی منعکس کننده یه برای و به آت یا مثل چشمی مونه چشمی که کاشفت حوادث خالجی هست بدونی که دخالتی در تر خوب آنها باشه. از دو شده مخصوص برای تفتیلی باشی این فقط ترهیی یا مثل که در بسه حوادث نداره و یا دخالتی در بسه بود مصقب اما شاعران البته تاریخی که خودش هم معلوم. اما قطع که در مقابل هم در این به بحث میشه می در مقام اثبات شده هر اینکه در مقام در موضوع و که مشکلی شده باشه به از قطعه موضوعی از موضوعی قطعه در مقام استاد قطعه محفوظه در مقام و مقام استاد اهم است از لسان دنی یه کاش مقام استاد یه چون دسان دلیگه این در بعضی از موارد بعد موضوعی در مثال عدد دفت میشه بعد مواردن دسان عدد چیزی نیمده اون خاطر گفتیم قرد موضوعی در مقام اصطاق که در موضوع حکم شرعی داده بنابراین جز یا مثل از معلوم که قید که خم موضوعیت داشته این خم در صورتی به فیلیت میرسه برای مکندم که معلوم باشه قبل از اینکه اینو به باشه خونش کلمت برش ثابت نیست این نسبت به تقسیمش بخصی که, این که خود میشه بر این بخص اینکه خود قطع موجودی یعنی قطع موجود منخوض در مقام اسفاد و مقام اسفاد نسایی به مقام عدم دوره و و کتاب و زباقه نصود اینو یعنی مقام در مقابل مقام سعود که مقام و مقام ملاتات کان و مقام انشاء کان و امسال قطع موضوعی که قطع محبوب در مقام اثبات این در دسان عدمید و نوزوز حق شده این تحصیم میشه به تو قطع موضوعی سفتی قطع موضوعی کشفی یعنی همانتری قطع موضوعی سفتی یعنی قطعی که عنوان استفاد نفسانی محفوظه مجرد این انسان پیدا بکنه برون ثابت آن اگر واقعی باشه اگر خواهد واقعی نموشه ولی قطع موضوع کشکی یعنی قطعی که عکس شده در نسان عدده و در مقام استاد و واقعا قطعا با قاشه یک استفاد خاصه و نفسانی اغصن شده و که اینه که این بحثه که باشه این تو قرص تمام اقسام دره موجوده با این تعریفایی که اومده داخل اون شده خیلی ابهامی در تعریف اون چیزی که مبهم اینه که بیا تشخیصش چطور ما تشخیص بدیم از این رسم هی یعنی آیا قدر موضوعی که محبوب در لسانه دنده هست سفدی یا یعنی صرف ثبوت قدر در نقص مکلد کافیه یعنی که نه این قدر در طریقه در واقع باشه و کاشید باشه اون موقع مفید نموستیه خدومشه وقت محفوظ در مثال عبدالله رو ما از دسم صفتی یا از دسم کشکی مهیار تشکیس چیه؟ چون احکام در تقسیم حصولیتی تقسیم میشه به سرس اینه قاعده کلی و یه قاعده که احکام تقسیم میشه به سرست یک قسمیه که احکام مترکت میشه بر موضوع واقعی خودش و بر ذات موضوع واقعی مثل این روی از همه رو هران قرمت قابع این خمر واقعی هران میخواد ایک پیدا بشه میخواد یک بیدا نشه قسم دو که قسم مترکت بر موضوع معلوم یهمانال گونه یه وقصه، یه مثالی برات بزنم. که حُق متراکم میشه و موضوع معلوم. اگر معلوم باشه حُق مرجع معلوم نخواهد این دو بحث خصوصی درش نیست. آثار بر این میشه. اگه واقعا موضوع و واقعه آثار واقع متراکم میشه. اگر موضوع و موضوع معلومه، آثار معلوم برش متراکم میشه. اینا شبهی درشید این نمطلان بر دسم سفر دسم سفر قسمیه که شک دارید که آیا او به واقع تعلق گرفته یا به واقع معلوم تعلق گرفته به کدومش تعلقیه شک دارید و تمام های سوریی و خیلی از قواهد بقی برای کشف از این دسم سفر هم. این تمام معضلات تمام اقتلاق در فتابات تمام اقتیاس هست بخواستن به درسته سه همه بخواستن ناینی هم که باشه آخر شک داره که موضوع خودو میشه های موضوع واقعه یا واقع معلومه آیا ازاز خلق خمر یا خمر معلوم حرامه و اون خاطر کبتیم قطعه موضوعی تنها قطعه نیست که در موضوع عدل و در لسان عدل لعظ شده باشه چون اگه افتاده باشه که توپهی درش موضوعی به میگن که در موام اثبات محفوظ بعضی از موارد در لسان عدده میاد بعضی از موارد در لسان عدده نیمیاد ما این ها چطوری کشیست دیم یه معیاری برای تشکیزش میخواست یعنی وقتی هفتاد در ست از قطع موضوعی ها این ها مشتبه باشندش بایا سفتیه یک تشکیه یا همین علمی که افصادت موضوعیت داری یا موضوعیت نداره. تمام اینها نیاز به یه برای تشخیص دارن میعاری میخواد برای تشکیزش ولون بسمی که یک خود مترده میشه بر واقع محل برس اون بسمی که یک خود مترده میشه بر واقع معلوم اونم کسی شک درش نداره محل برس نیست قطاقای خیلی زفر و آسان ولی در قسم سوم که مشروع که ما نمیتونیم یا به واقع تر رو گرفت یا به واقع معموم تر رو نمیدونیم علمی هم در در سانت دومده بلیه تشریف این علم معلوم نیست و نمیتونیم تشخیص بدیم در این رابطه معیاری بلا تشریفش باید از نظر اصول من دلید. خیلی از موارد رو داریم که در موضوعی مشتبه بین صفتی و کشیم صفتی یعنی همی که پیدا بکنی کافی ازا علم تا به تحارت لباس خسند ای این پیدا گرده به تحارت لباس نماز بود همین مجردت حصول علم کافیه حالا بعدا معلوم میشه علم منجه احبوزه برخلاق برخلاف ما شوه از نماز درسته به خاطیه این علمی که اینجا محفوظه که همانه سفر نفسانه محفوظ بوده نه به عنوان طریقه الال واقع که قصد پیدا بکنی که آفی از این مهم است میخواد از واقع باشه میخواد نباشه میخواد موافقه با واقع باشه میخواد موافقه با واقع نباشه همینجه شما قصد داشته باشه طلبه قرد داشته باشی به اینجه داره درس میکنی میتونه شغیه رو بگیره حالا میخواد واقعا درس بخونه میخواد نخونه میخواد آخرش مفید باشه میخواد نه؟ همینجه قرد داره جرم داره که میخواد درس بخونه مجرمه که شغیه رو میتونه همین صفت نفسانی کافیه ولی به واقع واقعستن نداره همین که شما علم پیدا کنه به اینکه این شخص فقیره بخون لازم نیست تحقیق کنی بررسی کنی آبوی کسی رو کسی ادعای سیادت بکنه میشه به سه همه سادات همین صفت نفسانی برای حاصل بشه کافیه کاری به واقع نداریم لازم نیست بگیم دو نفر شما رو تحیید کنیم پخواهی که قصدی که در این موارد محفوظه بردی صفتیه شما این صفت نفسانی رو باید پیدا آدنیم قصد داری کافیه و کاری به واقع اصلا یا در مواردی که برا تعدیل یک شخصی برا توصیق یک شخص دو نفر توسیقش می کنن لازم نیست بگیم توسیق اینا به درست می نه از نظر شرعی ما موظفیم دو تا توصیف بگیم میخواد واقعا اینطور باشه؟ میخواد واقعا نمی کننه اصل دو تا توسیق گرفتن تو موضوعی اتاری تا به واقع نداریم ما خواد روح بگن همشون دروح از مهم اینه که این قطع صفتی یا یعنی این صفت نفسانی خودش بست نظر موضوعیت داره همین که شما قطع دارید کافیه. و کاری به واقع نداریم کاری به از واقع مند اینه میگن قطع موضوعی صفتی مثل علم قاضی علم قاضی قطع موضوعی صفتیه این قطع نفسانیه خودش قرد داره اون دیده که زیر خاتل امنده ولی این قرد موضوعی صفدی به درد مقام قضا نکنه در مقام قضا قرد ملغوز قرد خاصه باید سریع عدلی ماشه شهادت شعود باشه، قرد خامه باشه و امسانه باید علا خلاف انتیزاده که های نداریم مخویم مثال بزنم. این سفتی قطع موضوعی سفتی که خیلی آسون در تمام مواردی که قطع موضوعی صفتیه آسون ترین حکم برش این یعنی عاده نداره قضا نداره هیچ مشکل نداره مهمه که من قطع داشته باشم به ادالت این امام جمعه و این قطع داره حالا بعدن بیان چهار تا حرف براش در بیارن نمازها دازه نیست عاده کنن به اون زمان که من نماز می کندم قطع قرد داشتن کاشفیتش مهم نبوده سفتیش مهم لذا عاده لازم نیست من پنجه سال پشترکتی نماز خوندم بعدا اینکه شبکه که پاسه بوده از اکثر پاسبا بوده لازم نیست عاده کنید به خواهدید قطع موضوعی سفتی مفته در باب جماعت قطع موضوعی سفتی کاشفیتش مهم است ولی در از موارد قطعه موضوعی تشکیب باید باشه این در صورتی آخرش مویزی میشه مفید میشه کاشف از واقع باشه و موافق با واقع دردی موضوعیت داره یعنی ازا علم تا به شمری یک شیعه ازا علم تا به کهارت دباسه و سنده امسالینا قطعه موضوعیه یعنی درد که پیدا بشه در صورتی هم این مویزی میشه که موافق با باقی باشه اگه بعدن کشف خلاف بشه مویزی در موارد درد موضوعی کشفی به تشف خلاف باشه فرد عدم ایزاد و اند سخت یعنی آدم خواست قدام میخواد و تمام این آساد برش مترده میشه ولی در موضوعی سفتی آزون ترین احکام رو داره بنابراین امر در قطع موضوعی استفادی از حل از قطع موضوعی کشفی چون در مواجه کشفی باشه واقعا مهم امام زمعه باید عادل باشه و من هم قطع داشته باشه امام زمعه اگر من قطع داشته باشم ولی بعد کشف خلاف بشه اونه نمازهای باید آدم چرا از این واقعا مهم بود قطع من در صورتی موجزی بود که مواقع با واقع باشه ولی این کشه خلقینا واقع اینها از کجا تشخیص بدیم اینها قواعدی داره مهمترین قواعده که مشهور فوقه ها در مقام افتابش متزمند اعمال تناسبات احکام با موضوع هست تناسب حکم موضوع تناسب حکم موضوع قاعدتون، آمتون، سیالتون، بی جمیعه یه یعنی یه طلبه وقت بذاره دو سال در رابطه با مناسبات و حکم موضوع بحث کنه تحقیق کنه کافیه در فضل اجتهادش این یعنی فقط به شنیدن نیست تمام عمر ناهینی صرف همین مقود است برای کشت و مناسبات و حکمه ما چرا این فتبار اینطوری بگیم؟ چرا اون فتوا اون طوری بگیم؟ به خاطر مناسبات و حکمه موجوده مهمترین قاعده و قاعده سیار که در جمیع ابواب فقی جریان داده این در بحث تلهی که دیدن شما رو که نمیکنه در که بریم تقابل باشه بین قطع موضوعی و تاریخی از این حیث که لحاظ بشه فلجمله قطع موضوعی با تمام احسان که داره در مقابل قطع تاریخی محضه احکام کین این داره فلجمله اون نداره اون اگه بعدا دو تا پیدا کنه اون احکام مهنر محتمل که در بعضی از موارد تداخل داشته باشه شکر هم تقسیمش عقلی که نیست <تصفيق> نه یکسان نیست یکسان هم نیست این قطع تریجی قطعی نیست که در موضوع احس شده باشه مرتبط احسان واقعی هست. مرتبط به واقعی هست بلیه قطع موضوع مرتبط در احسان ظاهریه. من اینا رو قبلن گفتیم به هیچ هم نیست به هیچ تناقضی هم نداره واقعی <تصفيق> هم نداریم نداریم ولی ببینیم ما میخوامیم تعبیرات شيخ انصاری رو تعبیرش کنیم یه طوری که انشالله هم برش وارد نشه چون در کلمات اصولیی نیومده که در قضه اختصاص به احکام واقعی داشته باشه قطع موضوعی احکام اختصاص به احکام ظاهری داشته باشه این دربارتش نیومده ما کی اصول رو با مقام احتا داریم نیست چیزی که فقها که همین اصولیین باشن در مقام افتاد میگن اونها رو میخوام بیایم بگیم لازم نیست پناقضات و اختلافات کنیم از هان رو متشرفت کنیم و از آیات قرآن نیست که برش ایراد وارد نشه یا در بیان قصوره یا در اصل مطلب قصوره ولی منحیز المجموع شست و رفتر قطع موضوعی همیشه در احکام ظاهریه یعنی هر حکمی یه در ظاهر دلیلش علم اقصوده این سانبیت داره این وقت ظاهریه مثلا در حکم واقعیه نیست حالا که واقع واقع نسبت به خودش چون واقع نفسر عمر صدرایی که نیست که در حکم واقعیه باشه واقعی لینه همون که خود ادانت هم باید باشه اضاعتم تر به ادالت که میتونی بهش افتدار کنیم این ادالت زهن هم علم داشتن هم باید ادالت واقعی داشته باشه این واقعا ادالت باشه نه در صوق واقع بلو دوتا عادل بگن این عادل پس این واقع با اون واقع فرق میکنه. کنه تداخلی در ازهان درست نشه معلوم میشه شخص عادل نبود آره دیگه ولی. انسان را علم پیدا میکنه بردنه. هر علمی که انسان به هر چیزی پیدا میکنه طریقی. هر علمی نسبت به متعلق شریپی. هر علمی نسبت به متعلقش. علم به ادالت. علم به فس. علم به قدریت. علم به نجاست. علم به ملایت. علم به حکومت. علم به هر چی نسبت به متعلقش طریقی اونا مهم نیست اصلا یکی از ناشیگری هایی که شده در ابهاس اصولی اینه که برای چه علم تاریخی رو آوردن بحث کردن ما به هر چی علم پیدا کنیم این علم و اون چیز طریق دیگه برای چی آوردن اینو خرابش کردن دو نفر رو کنار رو هم بذاریم یکی هم خرابش شه اصلا علم تاریخی لازم نبود بحث بشه علم وحیتا داره حالا یا ذاتنیه استبار اینو در یه باز باید بحث میکردن بعدا میمدن بخص میکردن در مواردی که علم عکس میشه در لسان عدده یا در مقام میسته این خلق طول میکشه یعنی شاید پنج سال طول بکشه تا ذهن ما مستقر بشه بر تفکیه که بین قطع موضوعی و قطع تفکیه. ولی حالا قطع موضوعی رو ما الان داریم بخص میکنیم قطع تریدی هر قطعی نسبت به متعلقش تریدی هر قطع حالا در قط موضوعی یعنی وقتیتی که در دسان عدل لح میشه. شما ۳ و پ روایات و کایلشی رو حداقل باید ببینید دیگه مال کاری به مسترک نداره کاری به 100ها کتابه دیگه ندا. یک کتاب ۳ و پ هزار برای روایت حالا ما کردنزارش هم حساب می. این حالا ا اگر باید ببینید از این ۳ تا هزار تاش برای شر محبی داره یعنی به عنوان موضوع حالا به لفظ یقین باشه به لفظ رویت باشه به لفظ شهادت باشه به لفظ قفل باشه به لفظ ویشتان باشه به لفظ رعا باشه رویت باشه هرچی خلاصه اینطور چیزی داریم اینها رو باید تفکیل کنیم حکمش بدیم این نمل کلام در اینه که مواردی داریم مشتبه در قفل موضوعی بین سفتی و کشم اینا سیدار شد تمام فقاهت فقها ها و اون قوه اصولی در اینجا به درد میکنه شما میخواید فتوا بدی باید مبنا رو تشکیف بدی حالا من چهار تا مثال نوشتم برای اینکه آقایی مراجعه کنم و سعی کنید در مباحثات هر فایی که ما میزنیم مباحثه نکنید چیزهایی که تحقیق خودتونه در مباحثات اونا رو یعنی بعد از هر کدوم 2 3 وقت بحث این را متعادل کنید تحقیق کنید تحقیقات خودتون رو در موابیسات بگیرید واقعا که من اینجا گفتم رفیق شنیده نیاز به تکرار نداره مگر اینکه کسی بخواد اخبار بگه و تکرارش رو بخواد بگه و نیاز نداره تحقیقات خودتون رو تو موابیسا و موابیسه مهمتر از در اونایی که هم بحث ندارن اینها ضعیف چهار تا مسئله محل اختلاف بین فقه ها و اگر اصول اصول ما دوخته به فقه ما نباشیم هیچ پایده یعنی ما اصول به همینطور بخونیم روزی دو وجب سه وجب بره و بعدن هم فقه بریم جایی دیگه بخونیم اونم همینطورم اعتباط نداره این هیچ علمی حاصل نیست. این چهار تا مسئله فقهی محل اختلاف بین فقهای های مثل صاحب هدائه مساله جواهره. امکان است که بگیم نه چیزایی تو زهن ما مالشیده. اعلام و فحول درش شرگیه. یکی علم درکات نماز. خیلی مهمان. این شرط فرق او اون هم حتما پیگیر میشه. مرتبط تابوت مرد به از کتاب نمیخونیم نخونیم. مهم نیست من کتاب نمیخونیم میبینی که کتاب نمیخونیم. چون دوست یک سر میخوایم بخونیم یا تن نیستن نمیخونیم. ولی میخوایم مطلب فازه میشه علم برکات خوبه ها اینه که در نماز مغرب علم برکات باید باشه کسی شک که در برکات مغرب بکنه نمازش باطن میشه علم برکات برای شخص مسافه لازه تو نمازه چهار هم شکسته درکت شده درکت هم که داشته سرکت هم, هم که مغربه علم برکات برای نماز مصافحه باید باشه علم برکات ادنیه و در نمازهای 4 رکعتی باید باشه علم برکات بین در نماز صبح هم باید باشه یک سرکات به این معنای که الان گفتم گفتن باید معلوم باشه اگر کسی شک در وجوب داشته باشه به این تفسیر نماز فوتل میشه اگر کسی شک بکنه حالا آیا این سفتیه یا کشکیه قطع موضوعیه قطع رجعته یا قطع به رکعات به این تفسیر کلام گفتن ملحوظه کسی نمیتونه بگه نه علم موضوعی ما در این مسئله نداره علمش موضوعیه قطع رکعات موضوعیت داره یعنی قطع به رکعات موضوعیت داره حالا این قطع آیا صفتیه یا کشفیه اگر صفتی باشه به محض اینکه انسان شک بکنه نماز میشه. به محض اینکه شک بکنه یقین پری ولو یک ثانیه باشه یقین میپره اون صفت نفسانی از بین میره جرم از بین نماز باطل میشه باید اعاده کنه ولی اگر این کشفی باشه انسان مهلت تربی رو داره میتونه یه ده سانی فکر کنه میتونه اعتماد به قول بچه بکنه میتونه اعتماد به اون زشت شمار بکنه میتونه اعتماد به قول زن بکنه میتونه اعتماد به مهرا بکنه امثال اینها اگر کشتی باشه، بخواه واقعا مهم ولی اگر صفحه نفسانی باشه به محض او روز تردید نماز باطل میشه حالا شما فتواتون کدوم کدومه؟ هیچ روایتی هم نداره یک روایتی بیاد بگیش این آیا صفت نفسانیه یا کشیه شما یک روایت برش پیدا نمیدونید ست سادم در سخونی به این نفته نمیرسید بنابراین همین الان باید تشکیف برید آیا این فقط موضوعی دردکهات رو شما صفتی میدونید یا کشید حالا برزرینی از که برای اشاره نمیت داره تو ما وقتی اول که میمونم این حالا که من چه حالتی داره که آمد دار اشاره ما رو مکنه ما این واقع عمله با جایی داری که این با این ست درسته تو به این اهمیت داره که مثلا من حالت نفسانی نه ببینیم به بعض نوار قف به عنوان صفت نفسانی باید باشه مثل مرتب به که شک کنه اعلام میشه اگه مرد باشه صفت خوا که این صفت رو از دست بده و این آقا این در باطن توبه کرده در باطن رو توبه کنه به درد جهنمش میخوره در دنیا باید اعدام بشه داری این صفت باید باشه حالا که از این مستقرده که براه که به نظرم به چادر، در این مهم باشه حالا که از از این کاری با اون نداریم اصل رو مثلا چی باشه مهمه که این مسئله اختلافیه این مسئله اختلافیه علم موضوعی در این مسئله اختلافیه بین صفتی و کشفی نظر شما چیه کاری به دیگران نداری خودت تشخیص بده شما این را با صفتی بگیری یا کشفی بگیری تحقیق کن که مطالعه کن تو موافقه به نظر خودت برس پس خودت برای خودت حاصل میشه آیا تروی جایزه یا جایز جایزه نه مبناه میخواد بعضی ها شروع میکنم به حدیث خوندن آقا روایات رو بخونیم چرا اصول بخونیم؟ روایات خوندنش منطق میخواد کسی روایات رو میتونه بفهمه که منطق اصول براش باشه بدون این منطق انسان روایت نمیفهم پس ما باید این مبانی رو بدونیم اختلاف در این به این دوست و کشفی هست نظر شما کدومه در مطالعه و مباحثه بهش باید برید. نظر ناینی به درد شما میخوره نظر تبریزی به درد شما میخوره و نظر دیگران نظر خودتون مهمه آیا؟ و آیا در رسایده برای چی میخونن؟ میخواییم امتحان بدیم عمر تلف کنیم و میخواییم به فتوا و مبنا برسیم این میخوایی به مبنا برسیم این مسئله باید تشخیص بدی تا فردا مسئله دوم مسئله دوم باب شهادت علم به مشهودون به پیامبر از ایما اسلام فرمود حل هل از شمس بون شخص و یا خرشید رو میبینیم گفته میبین فرمود او در. یعنی که مثل خرشید بر شما واضح بود محسوس بود شهادت بده نبود شهادت نه. حالا این روایت رو باز اختلافیه یعنی قطع موضوعی در شعر الا مثل هازا فشرط قطعش موضوعی ولی باز دایر مدار بین صفتی و کشه چرا به خاطر این تشبیه تشبیه در محسوس بودن چون خورشید هست اون مشدود باید محسوس باشه به خاطر که خورشید محسوسه یا نه الا مثل هازا فشرط به این معنی که باید مثل خورشید معلوم باشه براد هر چیزی براد معلوم وجدانی بود شهادت بده ولو مخصوص نباشه این اگر علم لدنی داشتی شهادت بده اگر علم جبرهی براد حاصل شد شهادت بده اگه ملائکه براد خبر آوردن شهادت بدهتون آیه قرآن داره که بر مؤمنین ها نازل میشن برای اینجا اینا رو آلم کنن و تتنزد و علیه مول ملائکه این الگین ان الذين استقاموا ان دروازه استقامتنا تنزل و الملائكه ملائکه مؤمنین و, و اونها که عهد استقامتن نازل میشه حالا بر ماه نازل نمیشه اون موجب انحدارش نمیشه اگر کسی علمی از این तरह فراغت و تحقیق داره در واقع حالا الا مثل هاذا هر آیا در محسوس بودنش تشریح کرده یا در معلوم بودنش میزدان شه؟ اگر بگیم در محسوس بودن خب همیشه باید اون محسوس به مخصوص باش. تا خودمون ندیده باشیم نمی‌شه شهادت در ولی ولو اسم ملتونی براش باشه ولی اگر در معلوم بودن تشکی کرده هر چیزی برات معلوم و جزانی شهادت بده خب در خیلی از موارد بر ما همین از دیگران حاصل بشه میتونیم شهادت بدیم کل تقدیر این فرع دوم از فروعات اخلاق این هم درشت چون قط درش ملحوظه موضوعیت داره منتها صفتی یعنی خودم به حالت نفسانی قط باید برسن یا نه لازم نیست خودم این صفت قط داشته باشم بیانه برام خبر آورده و به بیانه اعتماد میکنم شهادت میگه <تصفيق> شخص شاهده باید قاطعه باشه شک دارید یا نه شک شک نداره با شاهد باید شاهد به قاطعه باشه بنابراین بحث موضوعیه بله این این خب بله حالا <تصفح> <باست خرقی تصفح> چن... که من خورشید رو دارم میدونم قشنفسام ولی اگه کسی به من خبر بیاره که آفتاب طلوع کرده عقل میشه شه دلیل نفسانی می میشه. اشتباهش اینه که باید با واقع که فقط باید موافقه با واقع با با با باشه قد دائما موافقه با واقع نیست. قد حتا با مطلقشه. حالا خط نکنن. در اول نهایه انلامه یقین قد علم کش اینا رو تفسیر کرده. اینا معنای دقیقی داره. اونا رو خط نکنن. ما الان میخواییم ببینید چیزی که فوقه ها میگن چیزی روصولیین میگن و شما مبتبی هستید این شوخی که ندارید آیم این که ایجا نشستن مبتبی راه اشتهادن میگه و ما بخواییم یه طوری تصکیل برای بشه نمیتونیم اصطلاحات قلم به فلسفی رو بیاریم بیارید. شاید یک شبهه تو زهن شما نسبت به بیه نکته. اونا همش ماره ولی باید این مطالب بشه چیزی که در این مسئله دارم میگن بعدا تعمل کنید شاید هزار تا اشتار برشت آرد ما گلو تحقیق آقایی نمیگیریم هر هر داره به هر مسئله بنویسه برای خودش ولی اصل سه مسئله که مشکل قایلان رو باید بتونیم به همین طور که گفتن بدیم این میگن این مسئله فرق موضوعیه و دایر مدار به این سفتی بکنیش اگر سفتی باشه، یعنی باید خودم باش اگر وصفی باشه یا کشفی باشه اهم بزنید که دیگران بگی یا خودانیده باشه صفت نفسانی لازم است. حتی مثال‌ها ها رو هم میشه تغییر بدی مثال رو الان برای این بزنی و یه طوری تبگیم بشه که مثال در اون یکی باشه اونا رو میشه راه داره ولی نه پرست داریم نه اینکه افتضای بحث مثال ثبوم و فرث ثبوم علم به نجاساته علم به نجازات قلبشه این نظیب حتی تعریف انهو قضو این عرفان معرفت علم در لسان دقیق اومده قطعش و علمش موضوعی ولی آیا کشفیه یا صفتیه قدومشه اختلاف علام اختلافا شدید به صاحب و مشهور اختلاف هدایق رو مراجعه کنید در باب نجاسات صاحب هدایق با دیگران اختلاف اون صفتی گرفته دیگران کشفی کرده. به اون خاطر فتوایی مشهور برای که اگر کسی قطعه به طهارت لباسش پیدا کنه بعد نماز بخونه در وقت باشه باید آهد. بعد از کشفی گرفتی به خاطر این که کشفی گرفتن کشکی بگیری یعنی یه دومی دو هم ملحوظه یه واقعی هم در کاره موافقتی هم میخواد مطابقتی هم میخواد ولی اونا که صفتی میگیرن موافقت و مطابقت در کار نیست هرچی از همین قدر من ولی اونا که کشکی میگیرن مطابقت و موافقت اینها ها شد اونا باید باشه. کشک خلاف بشه اونا منتفی شده بنابرای اعاده میخواد و بر چهارون علم باب است علم درواب استثاب و یقین درواب استثاب لا تن بازد یقین نوشه این یقین خب اومده میشه قدر موضوعی ولی های صفتیه به کشفیه این هم اختلافیه بعضی از اصولیه میگن صفتیه بعضی میگن کشیه لذا اونهای که قاعدن به کش، در باب استصاب با قائل گردم ایزام هستن در موالد تشتی خلاف شون میگم واقعا مهم بوده من یقین داشتم ولی یقین هم برخلاف بوده جهل مرکب بود ولی اون هم که تکی میدونن میگن علم ما با جهل مرکب ایچه علم علم، یقین، جهل مرکب، اعتقاد به خلاف همش یکی اگر شما اعتقاد به خلافش هم داشته باشیم موسی به خاطر مهمی بود که شما قرد داشته باشید و مفروض اینکه در هیمه این شما قاطعه بود حالا درد کشت خلاف شده اونا مهم نیست بنابرای سه خطی بودن علم جهل مرکب به خلاف اعتقاد به خلاف همه اینها یک حکی و هیچ خدا میشه آده ولی بنابراین که کشتی باشه به این طرف و جهل مرکب و اعتقاد به خلاف خلاف حالا فتحاهای که فتحاهای ها رو بردن نگاه کنه کدامش مبتنی بر مبنا هست کدامش مبتنی بر مبنا نیست اینها رو نیازه که وقت بذارید تحقیق کنید تأمل کنید توی این چار بر مبایستن بکنید و بعد بیشتر از این خسته نشد احمدتون تا فرق <تصفيق> این که اون راون که داشت من موبایل دیگه نه برای خودش. اگر ما برسیم اگه ما رفتیم میاد. یه مادر نمی با شینا به اشکالات مخاطره همین چیزی هر کسی یه جنبه اشکال فهمیده دوسته در اصطلاحات اصولین همه رو خبش آبجا استعمال یکی دقیق باشه این منابوب ها و دیگه برد برد اصطلاحات مخاطره این ها نه اینا چیز در نظر این ها نه اینا در نظر یک چیزی در نه Dakar, <سؤال> این معیار ما رو راه سادهی میشه تیدا کرد فقط فکر یه جایی نمیشه این معیار همه فقط منگیزه بکی و کشفید معیار چیه؟ دلیش چیه؟ باید گفتنه یک خود این معیار چیه رو برد شما نمیشه در مرمون است در طریق چیه موضوع چیه حالا حلقه دوبون رو مراجعه کنید جان بیدی دوزن یه آسان ترین کتاب رو بگید ما داشت حالا ادامه داریم در بیس شد ادامه داریم مهیار رو بده یه مهیار ماشه چرا اونه ها مخونم کنه بکنه ما میگونیم که کشفی یعنی یه تفکی یعنی نیست. همه تصدوت مصابی همه یکی میتونه 70 درصدی نبوده. کشیده نیست. کشیده نیست. اگه توی دلتنور که چیکار میکنی کشیش میکنی. دنیا همیدی میکنی. فیلسوف باهم میذاره تابیزیم، روزی کشیش میکنه. بودا وای تابیزی میذاره کل باگانی نمیتونست زمین تازمان منفی. اگه ما که برای همون روز مثل مساله روز جات نه ما همین که تشبیه فندیش گفتم آره در محسوس بودن یا در معلوم بودن این در محسوس, در در محسوس, در محسوس, در محسوس بودن این م... به بر این که ما نوع اخذ علم در موضوع چجوری من که این تشبیه یا مروتی آقا تشبیه اونم دیگهش نمی‌دونه چجوری به یا به یا نحوه اگر که اخذ ما که الان ببین اینی علاقاتا این در محسوس بودن یا در معلوم بودن؟ خب این آقا با می‌رسان باشه خب این بحث کشویی اگر با موضوعی نیستم چرا محزم؟ محزم؟ محزم این هم آقا نمی‌دونم چه جوری ما می‌گیم اینجا می‌خوام بگم موضوع شما چی لحاظ می‌کنید موضوع این لحاظ موضوعی که عقل شده قصدی که عقل شده در موضوع چه چجوری می‌خوای با چه میخوای می‌خوای عقل یعنی این چیزی که محسوس باشه رو می‌خوای به عنوان قصدی که عقل موضوع لحاظ بکنید یا نه قصدی که تو وجود ذات نفسه یعنی شما ببینی بعدی اونم الانوشنادم بودم مشکل اگه دو تا بغینه خب اینو با الان شما تو تقریری که داشته گفتید که تشکیه اونه که علاوه بر غثیگی داری مطابق واقع باشه خب وقتی دو تا بر من میانن که من مثلا من قطع نفسی ایجاد نمیشه موارده. موارده. در نماز که میان میاد واقع مطابق با من با باشه شاره در مواردی که بغینه من خلاف واقع در میاد مثلا سی درصد خب شما چه چیزی موارد رو اومده گفتم واقعا دا وقتی قایم میشه یعنی در در تناقض و تضاد و تشریع كمان زیاد ما فهمی تعریفی میشه کشفی مطابق با واقع بشه کشف هم شد وقتی بعیده برای من میاد من این هم تشریع بعد از اون متواضع سال تر... خودم گفتم میشه مثال تعریف خب پس این از 19 سال اصلا تعریف ندارید نه ما فهمیم از تشریع که درد در مواردی که معلومه بگوی اصال اینطوریه که اشکالی پس تعریف کشکی هم اینه من علاوه بر اون سه وقتی یه اینو این یعنی موافقت مطلقاً نمیخواد یعنی آره. آره. مثلا فرض کنید دولت بشه واقعی در مورد دولت دهنه ما مرتد گفتیم از واقعی هستیم الان ما به دوره طلب کردن این جنسه علت یعنی اینکه اون اون روان دان گفتن داد نه بیرون صدنگ اون قابل این باب شامل حدیث فقط همین امروز به دلیلش اینه قرینه یعنی قرینه رو باید از علم بگیریم قرینه استفاده کلامی است از کلی شرعیه بقیه نمازین از از اونها استفاده کنیم اولاً نظام قضا در اسلام عواظین پس ما چه دیگه ان شاء الله ما رفت در این حاضر ما اون تسلط چی قضا قدرت از اینجا یه ذره بره بالا ممکن نمیشه بگی آقا پلده اول که انسان رو به پشتباه هم نمیرسه محتفظه دیگه هم هست این قبل در پلده بودن